و و ماه از هنگام آمدن شمس تبریزی شش بار بدر تمام شده و شش بار هلال در عرض این مدت شوهرم مثل هلال هر روز کمی تغییر کرده و از من و از پسرانش دورتر شده هوی آدمی دیگر شده. ابتدا گمان کردم شور و هیجانی گذراست و بالاخره هر هرچه باشد حوصله از هم سر می رود. اما آنطور نشد. برعکس روز به روز بیشتر به هم گره خوردند. با هم که هستند یا در سکوتی عجیب فرو می یا پچ کنان صحبت می کنند. نتوانستم بفهمم چطور میتوانند این همه مدت سکوت کنند یا این همه حرف برای گفتن از کجا میآورند مولانا پس از هر بار صحبت با شمس به آدمی دیگر تبدیل میشود. دور و غرق در فکر انگار تنش اینجاست خودش نه دنیایشان دنیایی دو نفره است جایی برای نفر سوم ندارند به هر حرفی در آن واحد و به شکلی واحد اکسال عمل نشان میدهند با هم قصهدار میشوند با هم سکوت میکنند با هم به فکر میروند حالتهای روحیشان به هم بسته است بعضی روزها مانند گهواری که نسیم تکانش می‌دهد ساکتند نمی‌خورند نمی‌آشامند بعضی روزها مانند رودی خروشان بی‌وقفه حرف می‌زنند می‌خوانند راه می‌روند مردی که هشت سال است شوهرم است مردی که بچه‌هایش را مثل بچه خودم بزرگ کردم، مردی که برایش بچه آوردم، به مردی غریبه تبدیل شده. فقط وقتی به خواب عمیق فرو رفته، خودم را به او نزدیک حس می کنم. بیشتر شبها کنارش دراز می‌کشم و به صدای نفسهایش گوش می دهم. فقط در آن حال و هوای محرمیت است که حس می کنم زنش هستم و در دلم روزنه امیدی پیدا می شود که شاید پیوند گذشتهمان دوباره جان بگیرد. پیوسته به خودم امید میدهم سعی می کنم به خودم بقبولانم که همه چیز درست می شود صد البته که شمس روزی می رود هرچه چه باشد درویشی خانه به دوش است مولانا اینجا با من میماند او به این شهر به شنونده هایش به طلبه هایش تعلق دارد تنها چیزی که لازم است صبر کردن است هر وقت صبرم تمام می شود روزهای گذشته را به یاد می آورم روزهایی را که جلال الدین همیشه و در همه حال کنارم بود وقتی خبر ازدواجمان پخش شده بود بعضیها پشت سرم حرفهایی هایی زده بودند گفته بودند که را قبلا مسیحی بوده این زن اصالتا رومی است حتی اگر به دین حق هم گرویده باشد چطور میتوانی به او اعتماد کنی؟ بیگانه است از ما نیست عالم بزرگی مثل تو باید زنی بگیرد که مسلمان به دنیا آمده و مسلمان بزرگ شده باشد. اما مولانا اهمیتی به این حرفها نداد. نه آن هنگام نه بعدها. از این بابت همیشه سپاسگزارش خواهم بود. آناتولی دیاریست است که در آن دینها باورها. عادتها و قصهها در هم میختند. اگر غذاهای مشابهی میخوریم و ترانه یکی است اگر باورهای باتلمان مشترک است و شبها ممکن است در خواب من یکی باشد پس چرا نتوانیم با هم زندگی کنیم؟ بچه های مسلمانی می شناسم که نام ایسا بر خود دارند؟ بچه های مسیحی هم می شناسم که مادرهای رضایی مسلمان شیرشان دادند. آناتولی مثل آب براغ و جاری است. در اینجا همه ی با هم یکی میشوند. اگر میان مسیحیت و اسلام دروازه مرزی باشد، گمان نمیکنم این دروازه آنطور که متعصبهای دو طرف ادعا می کنند غیر قابل عبور باشد. چون همسر دانشمندی مشهور، همچون مولانا شده هم، همه گمان میکنند برای علما زیاد درسش قائل هم. اما اینطور نیست. شاید آلمان دینی خیلی چیزها بدانند. اما ایمان از راه های عقلی و نقلی به کف می آید یا از راه قلب. استادان گاه چنان حرفهایی میزنند که در کردنشان دشوار است. علمای مسلمان از مسیحیها انتقاد میکنند چون تسلیس را قبول دارند. دانشمندان مسیحی هم از مسلمانان انتقاد میکنند چون میگویند قرآن بینقص است. چنان حرف میزنند انگار این دو دین فرسنگ با هم فاصله دارند. حالان که با وجود مباحثهای فراوان علمای دینی وجوه مشترک مسیحیان عادی و مسلمانان عادی در آناتولی بسیار زیاد است. فرزندان یک خاکین زیر آسمانی مشترک میگویند سختترین چیز برای مسلمانی که به مسیحیت گرویده قبول کردن تسلیس است. برای مسیحی که به اسلام گرویده نیست سختترین چیز رها کردن تسلیس است. و اما خودم برایم سخت نبود که بپذیرم عیسی پسر خدا نیست، بنده خداست. قرآن از قول حضرت عیسی چه میگوید من بنده خدایم به من کتاب داده و مرا پیامبر گردانیده است هنگام گرویدن به اسلام این را از اول پذیرفتم دشوارترین موضوع برایم ترک کردن مریم بوده این را به کسی نگفتم حتی به مولانا اما گاه دلم برای آن چشمهای مهربان و قهوه‌ای مریم تنگ می شود. صورتش همیشه به من آرامش می‌بخشد. مریم مهربان و دوست داشتنی با آن چشمهای مخملی. در اصل از وقتی شمس تبریزی به خانه من آمده، آنقدر گیج شده که بیش از همیشه حسرت حضرت مریم را می‌کشم. به سختی می توانم خودم را بگیرم و به آستان حضرت مریم دعا نکنم. در چنین این مواقعی احساس گناه از درون مرا می خورد. آیا فکر کردن به مریم باعث می شود از دین جدیدم منحرف شوم؟ دوست داشتم از مولانا بپرسم. اما وقتی خودش را هم به زور می بینم چطور میتوانم چنین سوال حساسی بپرسم از این راز کسی خبر ندارد حتی همسایه ام هم صفیه که در هر موضوعی همراز من است فکر نمی کنم درک کند کاش می توانستم دردم را به شوهرم بگویم اما چطور می ترسم با این کار از من دورتر بشود پیش از این مولانا همه کسم بود اما الان فرقی با سایه ها ندارد نمیدانستم، فهمیدم پس در این دنیا امکان دارد با مردی زیر یک سقف زندگی کنی و یک رختخواب را با او قسمت کنی اما باز در حسرتش بمانی پس آدم دلش فقط برای کسانی که دورند تنگ نمی شود. ممکن است دلت برای نزدیکترین آدم هم تنگ شود ممکن است شوهرت که با او سر بر یک بالین می‌گذاری یک روزو ناگهان به غریبه‌ای تبدیل شود